ملیم و حافظم و قائلم و حتى و دلیلم و عینا حتی و تمتعه طویلا السلام علیکی یا مولاتنا يا فاطمه الزهراء السلام عليكم یا اهل بیت النبوبه در آیاتی بودیم که به اون آیات تمسخ شده برای اثبات وحدت شخصی وجود آیه بعدی که به اون تمثب شده اون سوره مبارک توهید و قل هو الله احد و الله الصمد هست یعنی به این سوره مبارکه برای اثبات به وحدت شخصی وجود هم به کلمه احد در این سوره استناد شده و هم به کلمه صمد در این سوره مبارکه رضا لازم است که ما بحث رو در هر دو جهت جهد الله وارد بشیم و اون رو به نقد بذاریم احد اونجور که از بعضی از روایات فهمیده می شود به معنای یک است اون یکی که از باب اعداد نیست و به معنای یک و واحدی که از باب اعداد هست نمی باشد خب وقتی که احد یکی از باب اعداد نیست یعنی یکی که در مقابلش دو باشد به این معنا نیست یعنی کل عالم فقط خداوند متعال هست و در مقابل خداوند متعال چیز دیگری نیست همینطور که احد در مقابلش دوی تصور نداره اینی که خداوند متعال نامیده شده به کلمه اهد یعنی در مقابل خداوند متعال چیزی وجود نداره و این به معنای این است که کل عالم خداست و همه هستی وجودی منهاظ از وجود خداوند متعال ندارد و تنها یک وجود هست که اون وجود خداوند متعال هست و این فقط و فقط به این نحو هست که اهد معنا پیدا می کند و در مقابل خدا نبودن معنا پیدا می کند که ما به همین نحو معنا بکنیم که در مقابلش دوی نیست فقط به همین نحوه در مورد خداوند متعال تصور دارد که ما بگوییم همه عالم خداست اگر بقیه موجودات رو هم ما موجودیتی براشون قائل بشیم, بشیم سوای خداوند متعال خب یعنی اینها در مقابل خداوند متعال هستند لذا دیگه معنای احد در مورد خداوند متعال صادق نخواهد بود در نقد این استدلال خب ما نکاتی رو الله به انایت حضرت صدیقی طاهره سلام الله علیها ها میکنیم. اولین نکته اون اینکه که احد در لغت به معنای یک و فرد است که جمع اون هم می شود آهاد و این اصلا رفتی به وحدت شخصیه وجود ندارد و همینطور که از ظاهر آیات و روایات دیگر کاملا مشهود هست که انشاءالله به اون هم خواهیم پرداخت به این معناست که خدا و رب و خالق و الله و الاله اونی که مستجمع جمیع کمالات هست فقط خداوند متعال هست چیزی در مقابل خداوند متعال نیست که همشعن خداوند متعال باشد ربی در مقابل خداوند متعال وجود ندارد خالقی در مقابل خداوند متعال وجود ندارد چیزی که مثل خداوند متعال مستجمع جمیع کمالات باشد وجود ندارد الله فقط خداوند متعال هست به معنای دیگر در رتبه خداوند متعال هیچ چیزی وجود ندارد و خداوند متعال فرد است در این رتبه‌ای که در اون قرار گرفته در این خالقیت خودش فرد است در ربوبیت خودش فرد است در این کمالات خودش خداوند متعال فرد است در این رتبه در مقابل خداوند متعال چیزی قرار نگرفته خب این ربطی به وحدت شخصی وجود نخواهد داشت که اصلا کل عالم غیر از خدا چیزی نیست خب به این معنا اصلا ربطی ندارد نکته دوم این که این معنایی که شما از روایات نقد کردید و اینکه خداوند متعال واحد عددی نیست خب این به این معناست که اینطور نیست که ما در اعداد میبینیم در اعداد ما مشاهده میکنیم که خب ما یک رو وقتی که یکی یکی بهش اضافه بکنیم عدد دو شکل میگیرد وقتی بهش یکی دیگری اضافه بکنیم عدد سه شکل میگیرد اینی که از اضافه یک از تکسر یک از تعدد یک اعداد پدید میآیند. خداوند متعال این گونه نیست اینی که خداوند متعال واحد از باب اعداد نیست احد به معنای واحده غیر از باب اعداد هست به این معناست که اعداد همه از یک پدید اند. از تعدد و تکسر یک پدید اند. اینه که خداوند متعال آهد هست. اینکه که خداوند متعال واحد هست، اما این واحد از باب عداد نیست. خب، اگر بخواهیم این معنا را عقد بکنیم، این بلید معنا است که اینگونه نیست که عالم از تعدد و تکسر خداوند متعال پدید آمده باشند. اینگونه نیست که ما در عداد می بینیم که دو از همون یک و تکسر یک پدید آمده است، پس عالم هم از وجود خداوند متعال تعدد وجود خداوند متعال تکسر وجود خداوند متعال پدید آمده است لذا خود ملا صدرا در شرح اصول کافی در توضیح همین بلا تعویل عددن خود ملا صدرا که این رو ایشون رو که از قائلین به وحدت شخصی وجود میپندارند در توضیح بلا تعبیر عدد در شرح اصول کافیش این کلمات رو میگوید یعنی ان وحدته تعالی لیست من باب الاعداد وحدت خداوند متعال از باب اعداد نیست و هیلتی تحسل تحصل به تکرر امثاله الموجوده از الموهومه و اون تکسر و اون وحدت از باب اعداد اون است که به تکرر امثال موجودش به تکرر امثال وهمیش مثلا به وجود می آید که اعداد اینطور هست که یا واقعا چیزهایی که موجود هستند اینها متکرر می شوند که ما حقیقتا عدد دو رو به اونها رسبت می دهیم یا در ذهن خودمون این تصور رو می کنیم و تصور تکرر و تعدد رو میکنیم. اول موهومت الادد و الکسره و هو تعالی مما لیس كمثله مثل شای و خداوند متعال است که شبیه اون هیچ چیز نیست و ذالکه لأنه وحدت کل شایئن لیست الا نفس و وجوده الخاص به وحدت هر چیزی همون نفس وجودی است که مختص به اون هست و از لیس لوجوده مثل لا خارجا ولا ذهنا و چون برای خداوند متعال هیچ مثلی نیست نه ذهنا و نه و تصورن نه خارجا و حقیقتا فكذلك وحدته و صفاته صفات الحقیقیه همینطور برای وحدت خداوند متعال هیچ نظیری نیست و همینطور برای سایر صفات حقیقی خداوند متعال از کلها چون همه صفات خداوند متعال ذاتو ذات خداوند متعال هستند فوحدت علمه و وحدت و, و چورت کن وحدت علم خداوند متعال یک وحدتی است که کنهی ندارد لیست من باب اعداد، از باب اعداد نیست فلا ثانیه لعلمه خارجن ولا ذهنا هیچ نظیری برای علم خداوند متعال نه خارجن وجود دارد نه تصورن نه ذهنا در این رتبه در این این در این نهوه علم در این گونه علم هیچ نظیری وجود ندارد و نزیری هم تصور نمی شود کرد و کذا وحدت و قدرتهی و ارادتهی و غیرها من الصفات و همینطور در سایر استفات خداوند متعال هیچ نظیری نمی شود پیدا کرد نه تصور کرد اینی که خداوند متعال واحد بلا عدد هست یعنی هیچ نظیری ندارد در جمیع صفاتش از جمله وحدتش و وحدت هم به این معناس وحدت عددی که همینطور که اعداد از باب تکسر و تعدد پدید آمده اند تعدد یک پدید آمدهاند خداوند, خداوند متعال اینگونه نیست که تعدد پیدا بکند و عالم از خداوند متعال پدید بیاید همچنین آقای محمد حسین توताई در خود المیزان ایشون این رو میگویند که اهد در مورد چیزی و کسی به کار میرود که قابل تکسر و تعدد نباشد خب همه این معانی که از کسانی هستند که جزو بزرگان فلسفه هستند و احيانن جزو آزم قائلین به وحدت شخصی وجود هستند، خودشون این گونه معنا کردند که اینی که خداوند متعال احد هست اینی که به این معناست که قابل تکسر و قابل تعدد نیست یک معنا و دوم اینکه نظیری خداوند متعال در صفاتش ندارد خب این رو هم می توانیم به همین معناه اول هم برگردانیم یعنی خداوند متعال قابل تکثر و تعدد نیست و در جمیع صفات خداوند متعال نزیری نزهنن نه وهمن و تصورن پیدا نمی شود خب این علاوه بر این که هیچ ربطی به بحث شخصی وجود ندارد هیچ دلالتی بر این ندارد که عالم همش خداست علاوه بر این بلکه این معنا دقیقا رد وحدت شخصی وجود هم خواهد بود زیرا ما در وحدت شخصی وجود اینطور معنا کردیم و اینطور تبین کردیم که یک وجود هست و اون وجود خداوند متعال هست که خداوند متعال به نفس رحمانی خودش به وجود عام خودش عالم رو پدید آورده و همه عالم از وجود خداوند متعال پدید آمده اند. که این در واقع می شود یک نحوه تعدد اون وجود خداوند متعال همینطور که ابن عربی کرارن گفته بود که فلواقع خداوند متعال با این وجود عام خودش با این نفس رحمانی خودش محدود به کل حد می شود خب یعنی فلواقع این نظیر رو ما می توانیم از باب اعداد بگیریم که همینطور که از اضافه عددی یک مخلوقات و عالم پدید آمده اند خداوند متالیک مقام ذات دارد که اون مقام بسیط است و یک مقام دارد که اون مقامات که اون تعیونات هست اون تکسرات هست که از تعیون خداوند متعال از کسرت خداوند متعال از تعدد خداوند متعال به ای به یک معنا عالم پدید آمده است که علاوه بر این که این معنای از عهد هیچ ربطی به وحدت شخصی وجود ندارد بلکه به نحوی هم این رد وحدت شخصی وجود خواهد بود نکته سومی که در رد این قول باید عرض بکنیم اینه که این عبارتی که اینها بهش استناد کردند در این سوره که قُلْ هو الله الله احد که استنادشون به روایت است در تفسیر این آیه که در روایاتی آمده که الاحد بلا تعویل عدد اهد یعنی واحدی که از باب اعداد نباشد این معنایی که از روایات شده این فقط در یک جا این عبارت ذکر شده و اون در خطبه 152 نهج البلاغه است که به نظر این خطبه همون خطبه است که مرحوم کلینی کامل اون رو و مستنداً اون رو ذکرده در اصول کافی باب جوام, جوام توحید حدیث شماره پنج همین خطبه رویشون کاملش رو آورده مفصلدرش رو آورده و این رو مسندن هم ذکر کرده یعنی مرحوم رضی خب سندی برای این ارائه ندادن اما مرحوم کلینی سند برای این ارائه دادن در اون خطبهی که مرحوم کلینی ذکر کردن در اونجا به همین جای خطبه که میرسد عبارت این گونه است که الواحد و بلا تعویل عدد خداوند متعال واحد بلا تعویل عدد هست لذا در استناد به روایات هم خب اینی که شما احد را این گونه معنا میکنید خب این در نقل های دیگر و چه بسان نقل های اسحه از این نقل این نسخه بدل وجود دارد و اون واحد هست عدد لذا رأسا دیگر نمی شود خب به این روایت برای تبیین خود معنای احد تمسک کرد اگر ما ترجیح برای این قولی که مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه زکردن زکر قائل نشویم علاوه بر این خود اهد در روایات متعددی معنا شده معنای عهد بیان شده روایتی است که مرحوم شیخ صدوق این رو در توحید خودشون نقل کردن که قال الباقر علیه السلام به این نه معنا کردن که الاحد الف, الف, الف, الف الفرد و المتفرد بعد در ادامه دارن که این ادامه رو همدی از مهندسین و علما از جمله مرحوم فیض از جمله مرحوم بهرانی هست از جمله علام مجلسی در مرآت و بهار و خود هویزی در نورسغعلی این از اینجا به بعد روایت رو همه رو جزء خود روایت گرفتهاند یک وقت حالا به ذهن خطور نکنه که چه بسا در اینجا کلام خود شیخ صدوق باشه همه این بزرگان بعد از این عبارت الاهد الفرد الاهد الفرد المتفرد این عباراتی که در توضیح همین عبارت آمده رو جزو خود روایت گرفتند که ول احد و واحد به معنا واحد در اضافه آمده در ادامه این روایت که احد واحد به یک معنای واحد هست و هو متفرد لذی لا نذیر له اینی که اهد به معنای الفرد المتفرد آمده متفرد رو به همین معنا در خود این لسان آمده که متفرد به به این است که هیچ نظیری ندارد در رتبه خدا هیچ چیزی نیست خب این چه ربطی به وحدت شخصی وجود دارد المتفرد و لا نزیرله له وتوحيد و, و الاقرار و بالوحده و هو الانفراد و الواحد و المتباین الذي لایم من شعی ولا تحد و بشعی که متباین هست با بقیه چیزها است که لایم بعث من شعی از چیزی منبعث نشده ولا تحد و بشعی با چیزی متحد نشده و من سمه و از اینجاست که گفتهاند این بنا العدد من الواحد و ليس الواحد من العدد لأن العدد لا يقع على الواحد بل يقع على الاثنين از همین جاس که گفتن که بنای عدد و شکل گیری عدد از واحد است و خود واحد از عدد نیست چرا چون عدد بر واحد صدق نمی کند نمیشود ما این رو عدد حساب بکنیم بلکه ی قا بر دو عدد واقع میشود فمعنا قوله الله احد معنای این کلام خداوند متعال که خداوند متعال احد هست این است که ای المعبود الذی یاله الخلق عن ادراکه یعنی خدا معبود است که همه خلق ماله شدند و همه خلق گرفته شدند از ادراک اون نمیتوانند خدا رو درک بکنند سرگردان شدند درک خداوند متعال و احاطه به کیفیته و خلق سرگردان شدند از اینکه احاطه پیدا بکنند به چگونگی خداوند متعال همه این مشکلاتی که در مباحث فلسفی آمده این است که خواستن کیفیت خداوند متعال رو بفهمند کیفیت خلق خداوند متعال چگونه خداوند متعال خلق می کند رو بفهمند کیفیت علم خداوند متعال رو بفهمند در حالی که در این کلام آمده که همه خلق سرگردانن از اینکه احاطه به کیفیت خداوند متعال پیدا بکنند فرد به الهیته در اون الهیت خودش فرد است متعالون انصفات خلقه اصفات خلقش است لذا احد در این عبارت به این معنا آمده که الاحد معنای الفرد المتفرد چیزیست که هم فرد است و نزیری ندارد در این صفات خودش در این وحدت خودش خب این رو که دیگه اساس توحید اسلامی است و هیچ ربطی به وحدت شخصی وجود ندارد در کافی در این باب آخر و غوه من الباب الاول حدیث ماره یک علی بن ابراهیم ان محمد بن عیسی بن عبید ان حماد ان حریز ان محمد بن مسلم همه جزء سقاط هستند. ان ابی جعفر عليه السلام آقا امام باقر عليه السلام فرمودن انهو قال فی صفت در صفت قدیم که خداوند متعال هست فرمودن انه واحد سمد خدا واحد است خدا سمد است. احدی المعنا احد رو به این بیان حضرت طبیعی فرمودن که احدی معنا خدا در معنا هم واحد است لیس به معانی کثیره مختلفه معانی کسیره و مختلفه ندارد که حالا توضیح این در ادامه روایت می آید قال قلت جوئنت فداک فدای شما بشوم یز قومن ای قوم من اهل العراق از اهل عراق گمان کردن که انه یسمع به غیر الذی میشنود به غیر اون چیزی که میبیند همینطور که در مخلوقات یک چشم هست گوش و با چشم مخلوقات میبینند و با گوش میشنوند در خداوند متعال هم این است با اون چیزی که میشنود با اون نمیبیند انه به بغیر الذي يبصر و یبصر بغیر الذي یسمع میبیند به غیر اون چیزی که میشنود قالا حضرت فرمودند خود همین جناب محمد ابن مسلم میگه که فقال حضرت فرمودن و الحدو و شبهو هم دروغ گفتن هم ملهج شدن و هم تشبیه کردن خداوند متعال رو تعال الله عن زالک خداوند متعال متعالیس از این انه سمیعون بسیرون یسمعو به ما یبصر و یبصرو به ما هم سمیع از هم بسیر به اون چیزی که میشنود میبیند به اون چیزی که میبیند میشنود قال قلتو یز امون بسیر بسیرون على ما یعقلونه اون بسیر هست اون بیناس به اون چیزی که به همون نحوی که اونها تصور میکنن، همون جور که اونها تعقل میکنن و کیفیت علمشون اونگونه هست خداوند متعال هم به گونه علم پیدا میکند قال فقال تعال الله خداوند بنده متعالیس از این انما یعقل ما کانه به صفت المخلوق و لیس الله کذالک اینی که تعقل کردن تعقل کردن از صفات مخلوق هست و خداوند متعال این گونه نیست لذا این تحیلی که در باب علم الهی در کلمات فلاسفه هم آمده از این باب است که اونها خواستند علم الهی رو به نحوی که ما خودمون علم پیدا میکنیم به نحوی که ما خودمون تعقل میکنیم طبیعین بکنن که به این مشکلات برخوردن لذا در این حدیث شریف که سندش هم سند بسیار خوبی بود حضرت فرمودند حدی المعنا حدی المعنا خداوند متعال واحد است در معانی و صفات اینطور نیست که تعدد صفات در خداوند متعال وجود داشته باشد لذا خب اینکه آمده از قل هو الله و احد یک معناش هم همین است که خداوند متعال همینطور که واحد است در ذات خودش هم بسیط است و تعدد و تکسر در ذات خودش ندارد روایت دیگری است که مرحوم تبسی و ابن شهراشوب هر دو این بزرگواران که هر دو بسیار جلیل القدر هستند از کتاب داوود ابن القاسم جعفری معروف عبی حاشم الجعفری نقل میکنن که خب این عبی حاشم الجعفری که بسیار جلیل القدر هست نجاشی و شیخ توسی میگوین عظیم عند الائمه شخصی است که منزلت عظیمی دارد نزد ائمه اگر بوده چیزی بفرماین به این شخص میفرمودند بعد نجاشی در ادامه میگوید شریف القدر سقه خب از امام رضا علیه از ایشون امام رضا رو در کرده تا امام زمان این ائمه اتحار رو در کرده صاحب کتاب هم هست که خود مرحوم ابن شهراشو بود توسی از کتابشون نقل میکنن قلت العبی جعفرن الثانی علیه السلام با آقا امام جواد علیه السلام عرضه داشتم قل هو الله احد ما معنا الاهد معنی احد در این آیه شریفه چیست قال المجمع علیه بالوحدانیه احد به این معناست که همه اجماع دارند به وحدانیت خداوند متعال اما سمعته یقول آیا این آیه شریفه رو نشنیدی ولئن سألت هم من خلق السماوات بالعرض و سخر والقمر و لیقولون الله حتی اگر از این مشتکین سوال بپرسی که کی آسمان ها و زمین رو خلق کردی کی تسخیر کرد شمس و قمر رو همه میگوین خدا یعنی همه قائلند. به وحدانیت خدا و اینکه خدای عالم رب مطلق و خالق مطلق فقط خداوند متعال هست و این احد هم به این معناست اینی که خداوند متعال حالا احد از باب اعداد نیست یا واحد از باب اعداد نیست در خود روایات هم در این مورد توضیح داده شده که حالا ما به بعضی از این روایات اشاره می کنیم یک است که خود مرحوم شیخ صدوق این رو در توحید خودشون در کتاب خصال در معانه الاخبار نقل کردن که ایشون می حدثنا حدسنا محمد بن اسحاق طالقانی رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن سعید بن یحی البزوری حالا ما این نقل رو از بله خود کتاب انشاءالله توحید و سایر کتاب همه این نقل آمده قال حدثنا محمد بن سعید ابن یحیی البزوری قال حدثنا ابراهیم بن الهیثم البلدی قال حدثنا ابو المعافی ابن عمران عن اسرائيل عن المقدام ابن شریح شریح ابن هانی عن ابي خب سند این روایت اگرچه که مشتمل بر تعدادی از مجاهیل هست و خب ما بسیاری از اینها رو و تعدادی از اینها رو نمی اما از طرفی سایر روایات در این باب هم همه در این وزن هستند و معمولا ترجیحی نسبت به هم دیگر ندارند معمولا این گونه هستند که در سنده اینها مجاهیل وجود دارند و ما به اونها علمی نداریم اما از این جهتی که خود جناب مرحوم شیخ صدوق ایشون در سه کتاب مهم خودشون هم در توحید هم در خصال هم در معان الاخبار این حدیث رو نقل کرده اند و در توحید خودشون در زیل این حدیث به بحث مفصلی پرداخته اند خب معلوم می شود که خود مرحوم شیخ صدوق به این حدیث اعتناد داشتند و این حدیث رو پذیرفتند خب حالا از جمله بحثهای رجالی این میتواند باشد که ما اون چیزهایی که مرحوم شیخ صدوق پذیرفتند با توجه به این که در احوالات شیخ صدوق آمده که ایشون ناقد اخبار بودند و یکی از خبراء در علم رجال و حدیث هم بودند با توجه به اینکه ایشون این حدیث رو پذیرفتند خب می توانیم ما این حدیث رو حجیتش رو ثابت بکنیم که حالا البته مفصل این بحث رو باید در علم رجال ان الله به اون متحرز بشویم قال ان اعرابيا قام يوم الجمل الى امير المؤمنين علیه السلام روز جمال آمد خدمت حضرت فقال یا امیر المؤمنین تقول ان الله واحد و آیا شما مگید خدا واحد است قال فحمل الناس علیه قالوا یا اعرابی عماترا ما فیه امیر المؤمنین من تقسم القلب حمله كردن اصحاب به این اعرابی که آیا نمیبینی كه حضرت در معرکه جنگ هستند و حواسشون به جاها مختلفی هست قلبشون منقسم هست به امور مختلف الان جای این نیست فقال امیر علیه السلام دعوه درش کنید فا الذي لذی یریده الاعرابی الذي والذی نریده من القوم این چیزی که اعرابی از من میخواد ما این همون چیزیست که ما اون رو از این قوم میخواهیم میخواهیم که همه قائل به توحید بشوند سنه قاله یا اعرابی بعد هزر فمونه اعرابی این القول فی ان الله واحدان این قول که خداوند متعال واحد است خب در جای دیگر بیان شد که حضرت واحد رو هم گفته بودن بلا تعویل عدد این قول الا اربع اقسام بر چهار قسمه فوجهان من و منها لا يجوزان على الله وجل وجهان اثباتان في دو تا از این چهار قسم جائز نیست بر خداوند متعال و دو قسمش ثابت می شود در خداوند متعال فاما اللذان لا يجوزان علیه فهو القائل واحدن یقصد بهی باب الاعداد اونی که جائز نیست ما در مورد خداوند متعال بگوییم این است که خداوند متعال واحد است و قصد شود واحد از باب اعداد فهذا مالا یجوز این جائز نیست لان ما لا سانی له چیزی،, چیزی که سانیه براش وجود ندارد خدایی که در خداییتش دویی دوی وجود ندارد ربی که در ربوبیتش دویی وجود ندارد در علمش دویی وجود ندارد در صفاتش دوی وجود ندارد در رتبه اون چیزی نیست لایت خالو فی باب الاعداد این در باب اعداد داخل نمیشود همین معنای که ما از کردیم اما ترا بعد حضرت ادامه میدهند توضیح میدن. اما ترا کفر من قاله سالس و سلاسه کافر شد کسی که گفت خداوند متعال یکی از اون سه خداست سه خدا رو قائل شدند و گفتند یکیش خداست خب اینها کافر شدند برای خدا دوتا نظیر دیگری اینها در نظر گرفتند و قول القائل هو و واحد من الناس دومین شک از واحد که بر خداوند متعال جایز نیست این است که کسی بگوید هو واحد من الناس اون یکی از مردم هست یورید به نوع والجنس، جنس همینطور که ما در مخلوقات یک نوع و یک جنسی رو در نظر میگیریم در زیل این نوع و جنس افرادی رو و رو ما در نظر میگیریم این گونه خداوند متعال رو در نظر بگیرد ما لا جوز این هم جائز نیست مالای جوزو علیه لأنهو تشبیحون این تشبیح است و جل رب بنا انزال که و تعالی خداوند متعال از این عظیمتر است و اما الوجهان لزان یسبتان یسبتان فیدتو تا وجهی که ثابت است در مورد خداوند متعال فقول القائل این است که هو واحد لیس لهو فل اشیا اشبهان در مقابل واحد لابه واحد از غیر باب اعداد از در مقابل واحد عددی این است که واحد لیس له فی الاشیاء شبه واحدی است که در اشیاء شبیهی ندارد اشیاء دیگر هستن اما شبیهی و نظیری برای خداوند متعال نیست کذالک ربنا این از پروردگار ما فقول القائل انه عز وجل احدی المعنا خداوند متعال احد است احدی المعنا بهی انه لا ينقسم في وجوده ولا عقل ولا وهم خداوند متعال نه در وجود خودش منقسم می شود نه در عقل منقسم می شود و نه در وهم و تصور کذالی کربنا ربنا عزوجل این از پروردگار ما عزوجل یعنی اگر ما خداوند متعال رو هم واحد بلا تعویل عدد می نامیم یعنی خداوند متعال اولا نظیری در اشیاء ندارد ثانیا در ذات خودش هم بسیط هست که همه این معانی در مورد احد و در مورد واحد در روایات دیگر هم بیان شده بود که ما اینها رو از کردیم. لذا به وجوه مختلف ما متوجه شدیم که این تمسک برای وحدت شخصی وجود به این آیه شریفه هیچ وجهی ندارد و بلکه اتفاقا این تمسک از واسب اینکه خداوند متعال از باب اعداد نیست که اعداد تکثر می پیدا میکنند متعدد میشوند از خود اعداد چیزهای دیگری پدید میآید خداوند متعال اینگونه نیست و از خداوند متعال چیزی پدید نیامده است از وجود خداوند متعال چیزی پدید نیامده است پس علاوه بر اینکه باز این استدلال هیچ ربطی به این آیه ندارد بلکه این آیه شریفه رد وحدت شخصی وجود هم خواهد بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته